لله درك لم تأنس بدنيانا ولم تسر خلف طيف السيف ولم تعفر جبين العز مبتدلا فاستنطر الذل اصغاءا واذعانا بسم الله الرحمن الرحيم ابتدای سخن به خداست خدا سخن به نام انکی بے مثل و شبہ و بے همتاست به بے مثل و شبہ و بے همتاست تمام حمد و و صفت به خداوندی یکتا و بے همتا و درود بی پایان بر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم برادران مهاجر و مجاهد السلام علیکم و رحمت الله و برکات خداوندی منان من را سپاس گذاریم که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 و همچنان امیدواریم که داشته های برنامه امروزی مورد پسند شما قرار بگیرد. سخن به درازانه می کشانیم. می رویم به طرف داشته های برنامه امروزی. در برنامه امروزی سلسله اندرس ها شهید این هفته حبیب الله حقیار نصیحت های یک برادر مجاهدی که در این از زندان بگرام ریها گردیده است. ادامهی دروس مفتی ابوذر. در بخش نظام اسلام موضوع ما مقام و جایگاه اخلاق در اسلام و همین طور تحولات یک هفته على <متصف> في جنبات ليس على ولا على للمجد سلسله اندرس ها به شغل و حرفه باید متکی بود، نه به مال و دانا از نادان و نادان از دانا نفرد دارند قالم و باید عمل و علم داشته باشد استفاده نکردن از اندوخته ها و آمخته ها دو کس رنجی بهوده بردن و سعی به فایده کردن یکی آن و نخورد و دیگری آمختو نکرد هر که دست از جان بشوید هر چه در دل دارد بگوید هر که با دانتر از خود بحث کند وی بداند که در حقیقت نادان است دنیا زود میگذرد شایسته علاقه مندی نیست ملک از خیرتمندان جمال گیرد و دین از پرهیزگاران کمال گیرد. مشک آن است که خود بیبویاد، نه آن که عطارگویاد. مراد از نزول قرآن تحصیل سیرت خوب است. لا ترتيل سوره maktu. يدروي ما در این هفته نیز از مجاهدین حرکت اسلامی ازبکستان چند تن در سرزمین افغانستان به مقام والای شهادت نائل گشتند یکی از این شهدا برادر استشهادی ما حبیب الله حقیار می باشد. این برادر در اواخر سال 1432 با صفوف حرکت اسلامی ازبکستان پیوسته تعلیمات نظامی را فرا گرفته بود بعد از ختم تعلیمات نظامی خود را به لیست فدایان اسلام شامل ساخته بود بعد از شهادت مختوم نصرت فاریابی مسئول فاریاب بنابر فرمان امارا به مقام وای من حیث مسئول آن مناطق از سوی حرکت اسلامی ازبکستان تعیین گردید ولی کن دیر نگذشته بود که پنج روز بعد از رسیدن به صحنه روز یکشنبه در نتیجه عملیات مشترک نیروهای ناتو و منافقین داخلی به مقام والای شهادت نائل گشت Dar in la hazard ta' va' juu i jalp midarim. Inna lillahi wa inna idaihi rajahun. Ullakabib ullavi turge xafa' tahu. Likulli haudin miel با مسلمان رسم اسلامی نماند خالد و فارق و ایوبی نماند مسلم از نبی بیگانه شد باز آن بیت الحرام بطخانه شد شم اگر کچ سوزد سوزاند پرده فانوس را قومی بغیرت چی قیمت ناموس را حضار محترم و برادران عزیز Banazdi Allah tabara kautta Allah, mao shumaki, jakinan, imondarim. Banazdi Allah tabara kautta Allah islam kabulas. Inna dina inda islam Digad inhara kabul Ki kabul makana fakad aw fakadini dini islam raqabul makonad. Inshola mak kazimni sin. Ma, ma inshola solatina sin. Bawada johot mahkema sin. Allah tabarak wa taala mara dian dewa de khud basha inshallah ma iman khud ra imroz ke imani man inshallah amr Amrime kanat ki, bajin kufar mukaville vekale, in xollamaa, dar mukaville in istola sim. Saijas bahadu, keksem mukavudarim ki, lungi sunatas, walekin hoi xamxiri, rastuli, akram, salam, sanam ki, damigardan awizon, dar kujuhut, iso sjudan, ijam sunatas. Saijas ki, al-wala sunatas, hub xirnas miħkuren, holekin, dar għazwa, iso sjudan, ijam ham sunatas. Għabma Ineski, Allah tabare kut Allah mo' day aslam darġa, daji eslam, ammutu mu' stahtamua, da' shtarba' xad, uwa, ahrin Għabma Ineski, mu' johdinni kilomra, azdua, Vau, valel te taporau, liruode a boa. Taho sen keri, että veltohen, polipua. Ja بیایید با نصیحت‌های یک برادر مجاهد که در ایناواخر از زندان باگرام رها گردیده است گوش فرادهم بسم الله الرحمن الرحیم برادر مجاهد وقتی safar می‌خواهید از یک جا به دیگر سفر و سفر و جریان سفر خود را غیر مسئول سفر و وقت کی کہ ہم سفر رومے ساتھ ہیں ہم ایک برادر دیگر راہ میں خود ہم سفر کریں نا خاطر کہ در جیران سفر اگر خدا نہ خواستہ مشکل بی ایات در سفر کم در جیران تحقیق و مشکلات کار آسان می شود کجا سفر مشکلات زیادتر می شود و در جریان سفر کوشش بکنیم که امرای خود کدام ثبوت یا کدام عکس و یا کدام چیز دیگر را همراه خود نداشته باشیم به خاطری که میشواد کدام مشکلات بیاد بسانتر برای ما نو ثبوت و مشکلات جور میکند و کوشش بکنیم که در جریان سفر با موبایل همراهی هر برادری تماس نگیریم به خاطری مشکلات را موبایل جور میکند تماس هایی که ضروری باشد آن را گرفته و بقیه تماس های بی فایده خودداری نماییم و بر هایی که مشکلات را جور می آن را باید از موبایل خود دور نماییم. و در موبایل کامردار باید ترانه و فیلم های جدید را در جریان سفر از موبایل دور نماییم. و بیشتر کوشش نماییم که در موبایل کامردار عکس های برادران مجاهد خود را نگه نداریم. امّا عکس خود را نیز به خاطری که یک سبد برایمان جور می شود، که در آینده مشکلاتی را می دور نماییم. وقتی که گرفتار می باید خود را کنترل نماییم و کدام چیز هایی که برایمان مشکلات جور می کند از خود دور در جریان تحقیق باید خود را کنترل کرده و با اطمینان و فکر سوالات را جواب بدهیم و کوشش بکنیم که بسیار با حوصله باشیم و یک سخن را که گفتیم باید تا آخر همان سخن را بگوییم و اگر بسیار مشکلات بود و دیگر کدام علاجی نداشت بدون اقرار کردن و بعداً باید اقرار کدام جنگ و یا تروری و یا را و یا کدام کار دیگری که در آینده مشکلات سخ... مشکلات سخت راجور می‌کند در هیچ صورتی باید آن را اقرار نکنیم و در جریان تحقیق بسیار کوشش بکنیم که رفیق دیگری خود را قلمداد نکنیم و خاطری که قلمداد برای خودمان مشکلات را زیاد میکند و برای رفیق دیگری که در بیرون هست سبب گرفتاری آن میشود و اگر بسیار سخت سکنجه کرد بعدن باید دقیق قدرت آن را و نام آن را و نمبر موبایل آن را نگوییم و در جریان تحقیق اگر چند رفیق باشد ساروانوال مذکور میآید و میگوید که مثلا که ای رفیق تو احمد میگوید من و عبدالله در فلان جا فلان کاری را کردیم. و یا میگوید که عبدالله فلان کار را کرده هست. هم من خبر دارم. هم برای احمد میگوید. عبدالله میگوید که من و او احمد فلان کاری را کردیم. در این حالت میخواهد که شما را فریب بدهد. و از شما اقرار بگیرد. اما باید هوشیار و زیرک باشیم که فریب نخوریم و باید بگوییم من هیچ کاری ران کردیم. اگر کرده هست عبدالله که او هست که آن را خودش میگوید. و عبدالله را بیار پیش روی من. اگر Derpesi ruumiin, kun olen hyväksynyt. Deriin kautta, että meidän on oltava hyväksynyt. Deriin kautta, että meidän on oltava hyväksynyt. Deriin kautta, on oltava hyväksynyt. Deriin kautta, että meidän on oltava hyväksynyt. او باید از تکتیک کار بگیریم و بگوییم که ما هیچ کاری نیستیم نی طالب استیمانی نی طالب رامیشنایم، نی مجاهد هستیم، نی مجاهد رامیشناشیم، به خاطری که خداوند یک سبب را برابر کرده و براییم و در آینده برای اسلام خدمت بکنیم. تشکر از برادر ما که با نصیحت‌های خود مجاهدان را بهره من که تا در مقابل دشمن هوشیاری خود را از دست ندهند. آکنون در این لحظات از برنامه نوابت را به ای درستی مفتی ابوذر عزام حفیظه الله می بفرمایید. بعض مردم که دین را فقط نماز و روزه فکر می کنن او مجاهده را میگن که شما برای زمین جنگ کرده استین. ایتر می یا گن یا او احمقه هستن. دین را نمی فاهمن. از دین بیزار هستن او مردم. اصل دین را نمی فاهمن. ها که الله تعالی چی می ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل او يغلب فسوف نؤتيه اجرا عظيما بعض هردوم مجاهدان تان ميكنن ملومات ميكنن ك شما براي خدا نه جنگيديستين براي زمين جنگ كرديستين براي ملك حكومات حکومت جنگ كرديست ما شما رو گفتيم ك اين در الله تبارک و ك عبادت يك عبادت حكومتي ماس إن الحكم إلا لله نيست حكم مگر براي الله Amara Allah Tabudu illa iahu inja az az eybaudat ebaudate hukumatyaz. Abaudate ke Bamardum Ha kimiyet ki hasyam eybaudat. It turnis ki Hukumat kadangunohas. Na Ha kimyeti islami, ha kim kemi boshad amirul mumin kemi bosha, dar gham mi boshad dar alamudat taklif mi boshad u ajarna migra? Ajar migira. Saba'atun يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رز قيامت کے سایہ نہیں باشه دم وقت سایہ عرش میباشه ده سایہ عرش فقط هفت کس سایه اول imamun adilun. اس منصف امام عادل اس از این معلوم فقط حكم خدا را حاكم ساختا حكم, حكم خدا را غالب كاردن عبادتا است الله طلبه همي در جاية نعمة ومنت كفتا استا ومن يقاتل في سبيل الله كساك در رأي خدا مي جنگت فيقتل أو يغلب او شهيد کرده شود یا غالب شود فسوف نوتي أجرا عظيمة ما هر دوشرا غالب باشد یا مقتل باشد شهيد باشد هر دوشرا كلان أجر ميتين هزي چي معلوم شود؟ كي بعد ذلك غالب ميشه بعد ذلك حاكم ميشه يمع عبادت هست الله راضي ميشه بعض عجر ميشه أصاس أول همين بود كي در ديمقرسي أصاس أولين در ديمقرسي چي خالق اي انكار حاكمية الله رميكنات كي الله نعوذ بالله حاكم حقيقي نيست ما مردم حاكم حقيقي هستن اي كفر هست شرك هست ولا يشرك في حكمه احده در حکم خدا نیست شرک بکنه حکم را الله تعالی گفته است حکم ولا سوره اینجا ولا حکمه موحدین است کار توحیدی است. دټرنس که ما فقط نماز میخوانیم، روزه میگیریم، به سر ما کرزه بشینه، به سر ما زردالو بشینه، به سر ما بوش بشینه، به سر ما اوباما بشینه، ما برای چی هستیم؟ ما زنقو نیستیم. نه ایټرنس، ما باید حکومت کنیم. باید قانون خود ما، خود ما جور میکنیم. یا قانونی که با ما خدا تعالی دادگی است، با او عمل کنیم. مردم را مجبور کنیم که عمل کنند. این دیمکراسی که امروز حقوق بشر را دعوه میکنند مردم را مجبور کرده استن یا نه؟ زده زده کشتا کوشته مردم را مجبور کرده استن گه به قانون دیمکراسی ایمان میاری وگر نمیکشیم گری کار را ما میکنه ما چی میشم تروریسم میشم ما زید حقوق بشر میشم ما زید امنیت میشم ضد سلامت دولت میشیم این بیخی زیاد القاب زیاد به ما داده میشه اگر الحمدلله هست. کسی که ما را دشنام میته ما خرسان هستیم که کافر از ما در غضب است. کافر از ما و شما در غیظ و غضب است. که ما همه را تسلیم کردیم لیکن دو سی تجوانه را نتعانستیم الحمدلله کار رفته است اول اساس دیمکریسی چیست؟ انکار حاکمیت الله تعالی امین است یعنی الله تعالی را ما حاکم تسلیم نمی کنیم میگه جمهوریت ها همین الله تعالی را حاکم تسلیم نمیکنه. دویم این بنیاد دیمکرسی چی است؟ اکثریت کدام طرف که اکثریت باشد میگه همون خوب است اکثر مردم در کدام طرف باشند او را زندباد میگن اکثر مردم یک شادی را میگن که رئیس ما میشود بس رئیس ما میشود یک دختر را میارن یک زن را فاجر بدکارا دختر را میارن میگی رئیس ما است بنا زیر خینزیر که همیتر دیگر ها هستن زیاد هستن در دنیا امروز حالا که در شریعت اکثریت هیچ اعتبار ندارد در شریعت فقط حق پرستی اعتبار دارد اکثریت پرستی اعتبار ندارد الله تعالی می فرماید وما اکثر الناس ولو حرست بمؤمنین اگر شما می که همه مردم مسلمان شوان نمی اکثر مردم Agar shuma hirs kuninam musulmon nämi shawan, azi cimaalum shud, azi maalum mi shaké, bara imon akseriyat zarrur nes, akseriyat musulmon mi shawan nämi shawan muskil nes, Qurana agar shuma motalab kunen, tafsiru terjemara motalab kunen, ujat ziyad mi Nasilaya vaikenna aksera nasi lai aglamun, aksera nasi lai aglun, القابة جاهل و غافل و اتر القابة دادشده كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله وجماعته كم بود لكن بجماعته زياد غالب شد وجماعته جماعة بود قتل داود و جالوتا. داود على السلام امي جالوتا مالعون را واتاه الله الملك والحكمة و سسد و سسدكاس بودن الله تعالى ميگه كما هره حكمات دادم لیکن از جهت دیموکرسی از نگاه دیموکرسی گر نگاه می کنید و سیزده کسر که حکمت لیکن الله تعالی ما را اینجا درس داده است که اینجا فهمانده است که اصل چیز اکثریت نیست اصل چیز حق است کدام طرفه که حق می باشد بس امو زنداباد است دیگر الله تعالی در قرآن می فرماید که یا ایوها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا معا الصادقین ای اهل ایمان ta kuakunen, vuokunu maan saaduikin, tähän rosjoilla poishin, injam Allah tuli näköftkeikat ääkseriä poishin, yksi däliä aikaliu sharageishu muarem boujaimin jä, tämä ruusu kyiama tä häntä miöyät ke baaze pegambaram miöyän, yksi ommiti dora, baaze pegambaram miöyän kaksi, seitä doraan, ke baaha imono vardekiän, pegambaras. مولانا فلان فلان نیست، پیغمبر است پیغمبر یک تا مسلمان یک تا امتی دارد فقط دو تا سته بلکه در حدیث پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرماید که بعضه پیغمبران می آیند که یک تا امتی نداره یک قسم به ایمان نوردگی است گر از نگاه دموکراسی نگاه میکنید همین اعوذ بالله پیغمبر باطل می شود چرا که کس گپش را قبول نکر کس به او ایمان گر با دموکراسی نعوذ بلله ما ایمان میاریم گر نظام دموکراسی را قبول داریم با پیغمبر کجا میروه؟ پیغمبر ما امارم زده است امین نظام دموکراسی اسکو که که کدام طرف که اکثریت باشد و امون حق است با پیغمبر کجا میروه بیجاره؟ او خو یک امت هم نداره نعوذ بلله ثم نعوذ بلله ایمان ما عقیده ما اتر نیست عقیده ما اسکی حق را است که میکنیم. حق را فقط قبول می و حق تسلیم می فقط و فقط کسی نباشد هم حق را زندباد باد گویم حسین رضی اللہ تعالی عنه در کربلا شهید شد امروز مردم صحیح است که در مذهب اهل سنت والجماعت یزید را لعنت کردن جایز نیست لیکن شما به این صاحب بگویند که امروز مردم اهل سنت والجماعت که هستن شیار امان این مسلمان هم نیستن قویه فربکاره هستن فقط حسین رضی الله عنه را برحق میگوین یا یزید را برحق میگوین حق بود نه حالا که اکثریت نداشت دیگه مردم رو برحق میگوین و همین برادران عزیز اکثریت که بنیاد اساس جمهوریت و دموکراسی است هیچ قیمت و اهمیت ندارد در میزان شریعت هم قیمت ندارد در میزان انسانیت هم قیمت ندارد بازی رو مردم هستن که در نظام دیموکریسی هم منافق هستند همین جمعیتی ها که اینجا کامیاب شدند در صوبه سرحد تقریباً 80 فیصد رای را گرفتند 5 سال حکومت هم کردند اسلام زنده شد؟ همین در صوبه سرحد خیبر پختونخوا پیشاور میشاور همی اسلام زنده شد؟ چی شد؟ شراب آزاد شد زنا آزاد شد دیگر بدکاری زیاد شد ده قبایل اعتراض شروع شد هم گناه هایی که در دیگر حکومت ها نبود بیخی زیاد شد چرا که مسئله اکثریت است اینجا لیکن این مسئله اکثریت را قبول نکردن یعنی نفاقش است اگر درباره خیر اکثریت اتفاق کنند قبول نمیکنن. کنند لیکن درباره شر اگر اکثریت اتفاق کنن، زنده زنده‌باد میگن او مثال در هلند در سویزرلیند گفتن که نعوذ بالله مرد باید مرد قتی نکاح کند نعوذ بالله زن باید زن قتی نکاح کند گفتن که حقوق بشر است هر کس آزاد است چیزی میکن؟ میکنه چی؟ چیست حکومت چرا مداخلت میکنه باز مردم خیستن ها هو کردن پارلمان گفت که بلکل همی ترکنین اجازت نه قانون است صد بار مبارک است hatta ke imroz dar holand o suzerland allah taala mara tawfiq e shukr rab ta tawfiq e shukr ke shukr kunem ke musalman asem alhamdulillah hatta ke basag nikah kardan ra ijazat qanuni dadan allah چشمو قلب کار است موبایل رو جور میکنه هلیکوپتر رو جور میکنه تیار اورا جور میکنه لیکن همه ظاهر ظاهر چیزا رو نمیفهمن بلکه کافر هستن الله تعالی گمراه کردگی است چشمشو دلش از کار رفتگی است لیکن من شما را به کدام طرف آورده هستم فهمید هستین شما یعنی اکثریت را جمهوریتی ها می دموکراسی می که ای بنیاد ماست لیکن من شما را گفته هستم که در بنیادش هم منافق استن. این را گفتم که درباره شر اگر متفق شوند اکثر مردم زنداباد میگن و را مبارک میگن قانون شد با شما امی لیکن امی مردم درباره جنگ عراق خیستن میلیون ها مردم بچه لوح ها خیستن که نو وار نو وار جنگ بکار نیست جنگ بکار نیست در همه دنیا خیستن که شما امروز هم اینترنت انترنت صحیفه را باز میکنه در دو هزار کرد همه دنیا و کوچه ها از مردم فرص همه گفته گفت لوحه را بالا کدهگان که جنگ بکار نیست لیکن کسی گوش نداد میگه نه ما خود ما میدونیم چیکار میکنیم یعنی در قانون در بنیاد خودشان منافق هستند قط خودشان مخلص نیستند الله علاک کند این دو تا بنیاد چی بود دموکراسی بودز ف عزیز با ارزی معذرت که نظر به تنگی وقت نمی توانیم همه این دست را به خدمت شما تقدیم نماییم انشالله در برنامه‌های های بعدی ادامه درس را به خدمش تقدیم خواهیم کرد الشرك القيد مقام و جایگاه اخلاق در اسلام. شنوندگان عزیز رادیوی صدای جندلله باز هم خوش آمدید در این هفته باز هم شما را از یکی از نظام های اسلام آگاه می‌سازیم این نظام عبارت از اخلاق اسلامی می باشد که در هفته گذشته تعریف آن را به خدمت شما تقدیم نموده بودیم اما در این هفته نیز این موضوع را ادامه میدهیم. در این هفته از جایگاه اخلاق در اسلام معلومات مختصری را به خدمت شما ارائه امی نماییم. خدا کند که از این معلومات اسلامی ما استفاده کامل برده و یک بار دیگر اخلاق و روش خود را مطابق دین مبین اسلام نمایید. جایگاه اخلاق در اسلام اخلاق جایگاه و مقام ارجمندی در اسلام دارد. مقام و ارجمندی آن از جنبه های مختلفی معلوم می شود از جمله اول الله متعال علت ارسال پیامبر را تقویم اخلاق و نشر و پخش فضایل اخلاقی معرفی می کند چنانچه رسول الله صلی الله علیه وسلم در این مورد می فرمایند بعثت بعث تو لی اتمیم مکاریم الاخلاق جز این نیست که مبعث شده ام تا ارزش های اخلاقی را به اعتماد برساند دوم دین را با حسن خلق تعریف می نماید چنانچه در حدیث مرسل می خوانیم که مردی نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده سوال کرد یا رسول الله دین چیست ایشان در جواب فرمودند دین عبارت از اخلاق نیکو است معنای سخن این است که حسن خلق بزرگترین رکن دین بوده و بدون آن برپایی دین ناممکن می باشد درست مانند استادن در عرفات حین مراسم حج که بزرگترین رکن حج بوده و بدون آن حج اصلا بوده نمی تواند و در حدیث شریف آمده است که حج استادن در عرفات است سوم، حسن خلق فضیلتی است که نسبت به هر عمل دیگری میزان حسنات را در روز قیامت ثقیل میسازد عن ابي الدرداء عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من شيء اثقل في الميزان من حسن الخلقی. از ابو درداء رضی الله عنه روایت است که رسول الله صلی الله عليه و سلم فرمودند هیچ چیزی در میزان حسنات در روز قیامت ثقیل از اخلاق نیکو وجود ندارد چهارم مؤمنان در بین خود به درجات متفاوت ایمانی قرار دارند و بهترینشان آن است که بهترین اخلاق را دارا باشد. قلت و ای المؤمنین افضلهم ایمانا؟ قال احسنهم خلقان گفتم کدام یک از مؤمنان بهتر در ایمانن؟ پیامبر صلی الله علیه و سلام آن که بهترین اخلاق را دارد. پنجم Mmuinon darnail ba muhabbat wanazdi barasulullah sallallahu ali sallam dar okirat baham Fautan. Wa bihhtarin Muhabbad wa kur barasulullah sallallahu ali wasallam nasebi mu'minoni mishawat ki bihtarin akhlokro doro ant Anjabirin Anna Rasulullahi sallallahu alihi wasallam akol inna min ahab bikum illaya. Waakrobikum minni majis yomal kiamatti a hasinakum achleako. As Jobir Rosyallawan Huri Voyatast, Kirasulul lost Solullah Alihi wasalem Fermouden. as Jumle Nazdiman, Dar on Hoi An kibihtarin achlocro داشتن اخلاق حسنه شرط ضروری و لازمی نجات از آتش و رسیدن به جنت می باشد و کوتاهی و فروگذاشت در این شرط را حتی روزه و نماس هم جبیره کرده نمی تواند هفتم رسول الله صلی الله علیه وسلم در حالی که نیکوترین اخلاق را دارا بودند همیشه از الله جل جلالهو می خواست که اخلاقی اران نیک ساخته و بسوی بهترین آن هدایتش کند. عن ابن مسعود قال كان رسول الله صلی اللہ علیه و سلم یقول اللهم حسنت خلقی فحسن خلقی از الله بن مسعود رضی اللہ عنه روایت است که رسول الله صلی اللہ علیه و سلم در دعای خودشان می فرمودن آفرینیشم را نیکو کردی پس اخلاق را نیز نیکو بگردان هشتم الله جل جلاله پیامبرش را با صفت حسن خلق مورد ستایش قرار داده می‌فرماید و انک لعلا خلق عظیم و یقینا تو بر بلندای سجایای اخلاقی عظیمی قرار داری واضی است که الله جل جلاله پیامبرش را با درجه خیلی بزرگ مده می می‌کند و این خود نمایانگر مقام و منزلت اخلاق می باشد. نهم، کسرت آیات قرآنی که به موضوع اخلاق می پردازد، نشاندهنده اهمیت اخلاق می باشد. در این آیات، به آراست شدن، به زیور اخلاق نیک امر شده و کسانی که مزین به اخلاق نیک آن مورد مده قرار گرفته و ثواب نیکی برایشان وعده شده است. از رضایل اخلاقی نهی صورت گرفته و کسانی که ملوث به اخلاق ناپسن می باشند توبیخ و تنبیه گردیده و عقاب آن ناگووار خونده شده است بدون شک این کسرت آیات نشاندهنده اهمیت و مقام اخلاق در اسلام می باشد و آنچه بر اهمیت آن می این است که شماری از این آیات مکی بوده و قبل از هجرت نازل شده است و تعدادی هم در مدینه و بعد از هجرت نازل گردیده است و این خود میرساند که موضوع اخلاق اهمیتی به سزایی داشته و مسلمان در هیچ شرایطی از آن مستقنی بوده نمی تواند بلکه مراعات ارزش های اخلاقی در هر گونه شرایطی و در هر مقام و منصبی بالای مسلمان لازمی می باشد و در این که قرآن کریم در سره های مکی و مدنی به صورت یکسان به موضوع اخلاق پرداخته است. مشابهت خیلی زیادی به مسائل عقیدتی پیدا می کند. عزیز، این بود معلومات مختصر در مورد مقام و جایگاه اخلاق در بخش نظام اسلام. بقیه موضوع را در برنامه های بعدی ادامه میدهیم. با جند الله باشید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکید la tasmaruna اکنون نوبت به بخش اخیر برنامه امروزی ما رسید، البته در این بخش از تحولات یک هفته شما را با خبر می افغانستان پانزه جمعه لوال مطابق هفته اپریل در نتیجه یک عملیات مشترک نیروهای ناتو و همکاران منافقین داخلیشان در ولایت فاریاب سی تن از برادران مجاهد ما و مقامی والای شهادت نایل گشتند با تاریخ مذکور در شرق افغانستان سه کارمند یک مؤسسه ساختمانی زمانی کشته شدند که موترشان با یک ماه شده در کنار جاده تا سادم کرد با تاریخ مذکور در ویرات خوس در نتیجه انفجار یک که نوار ایجاده سه تن از زفرادی امنیتی ملی کشته شدند هجده جمعه اول مطابق ده اپریل در اولسوالی گزارای ولایت هیرات دو برادر استشهادی با استفاده از موتر صرف که مملو از مواد منفجره بود عملیات استشهادی نمودند که در نتیجه 12 تن واشمول پلیس کشته و 22 تن دیگر زخم برداشتند با تاریخ مذکور پنج برادر استشادی با استفاده از یک موتر در یکی از مراکز پلیس در ولسوالی موسا ولایت ولیت هلمان حجوم بردن. در مرحله اول دو برادر استشادی موتر مملو از مواد منفجیره را به دروازه انفجار دادن kidana deje 4 tan gooshta shudan baqiya baradaran ma tawani sand dakhili markazi qomandani amniya gardida amaliyati khud ra anjam dehand 5 digar ba shomol qomandani amniya anwar solali jumad در نتیجه دو امپیجار و یک حمله مجاهدین، دو اسکر نیروهای ناتو و یک مقام بلند حکومت مرتدی افغانستان به قتل رسیدن. با گپته نیروهای خبیص، ناتو یک اسکر آن در اثر امپیجار ماین و دومی در اثر عملیات مجاهدین کشته شد. نیروهای صلیبی در مورد محل حادثه جزئیات ایران نکردند در همین حال سخنگوی والی لغمن میگوید که در اثر انفجار یک ماین اولسوال دولت شاه این ولایت به قتل رسید و گفته سخنگوی والی لغمن این مرتاد سوار بر موتور در حال حرکت به سوی دفترش بود هدف ماین کنار جاده قرار گرفت بست جمعه اول مطابق 12 اپریل قایصوف میگوید که یکی از هلیکوپترهای نظامی ایشان در شرق افغانستان نشست استقراری نموده است در خبرنامه همچنان گفته شده است که بر سواریان این هلیکوپتر آسیبی نرسیده است ولیکن حقیقت نزده هم آشکار است ما هم میدانیم که نشست استراری نموده است چرا که بعد از سقوط مجبور است که به زمین بیفتد؟ با تاریخ ممسکر یک جوان 20 ساله در ولایت بغلان به جرم می شراب نوشی به 80 تا دور مجازت محکوم شد این کار مرتدین داخلی فقط یک استاع دین اسلام است ولیکن ما میدانیم که چین نوع افراد به حکومت اند افراداند که اکثریت به شراب خوری عادت دارند آنها این کار را فقط با خاطر دفن بودن اشتباهات موجود در خودشان انجام می دهند نه به خاطر تطبیق حکم شرایعت اسلامی هجده جمادیلوور مطابقیی افریل، ناتو میگوید که در نتیجه عملیات های مختلف در یک هفته در ولایت های قندوز، فاریاب، بدخشان، هلمند، اورزگان، وردک، لوگر، خوست و دیگر مناطق افغانستان کم از کم هفت مجاهد را به شهادت رسنده و نو تنی آنون را اسیر نموده اند ولكن این خبر اسوی زبیه الله مجاهد رد گردیده و گفته است که اینها همه جز یک دروغ چیز دیگری نیستند همچنان زبیه الله مجاهد گفته است که با تاریخ 18 جمادی الاول مجاهدین در ولایت های هلمند، فرا، بادغیس، هرات، قندهار، نیمروز، کنر، اوروزگان، لوگر، غزنی، ننگرهار، بغلان، لغمان، پنشیر دایکوندی، سریپول، وردک، پروان، پکتیا، نورستان و دیگر مناطق سی, سی عملیات های جهادی را انجام داده تلفات زیادی را به دشمنان اسلام رسانده اند 14 جماعت الاول مطابق 6 اپریل در ولایت بغلان مجاهدین اسلام یکی از هلوکوبترهای نیروهای ناتور توسط راکت ار پی جی حمله قرار دادند. که در نتیجه هلیکوپتر مذکور با تمام سرنشانش به حلاکت رسید پاکستان 15 جماع دلول مطابق هفته اپریل یک پایگاه نظامی مرتدین پاکستانی که در نزدیکی سرحدات این موقعیت داشت زیر برفکوش قرار گرفت که در نتیجه در این پایگاه بیش از 100 اسکر پاکستانی زیر برف ماندن مقامات پاکستانی میگویند که این حادثه در منطقه کوهستانی و یخمندان سیاچینی همایا صورت گیرد که به نام مرتفع رزمگاه صورت دارد پاکستان و هند در این منطقه پایگاه های نظامی دارند مقامات میگویند که هلیکوپترها و اساکر در این منطقه فرستاده شدند تا اساکر نظامی را که در آنجا گیر مونده اند نجات دهند قوائے نظامی پاکستان میگوید کہ ja e asakir hanuz na maloom ast mutakhassisin-e-nizami megoyan talafat-e-nashi az hawai namunasib va barkushha dar in mantaqa vladimir putin rais jumhuri jumhoori e montakhab e russiya yak maydan dar ehtiyaronatu qarar dade ast albatta nato az in maydan-e-hawai dar mamuriyat-e-afghanistan istifada قبل از این ناتو از روسیه خواست بود تا این میدن هوایی را در اختیار ایشان قرار دهد. ایران 16 جمادی الاول مطابق 8 اپریل به همه ما شما معلوم است که از چندین سال بدین حکومت آمریکا ایران را بعد است داشتن وسایل هسته‌ای متهم می‌نماید ولیکن ایران این را رد می‌نمود اما در یک خبرنامه ای که اکنون به نشر رسیده گفته شده است که یک تیاره خاص جاسوسی آمریکا از سال 2006 بدین سو در فضای ایران به پرواز بوده و آمریکا از طریق آن همه معلومات داخل ایران را مورد بررسی قرار داده است گفته می‌شود که این طیاره تقریباً 10000 کیلومتر در حدود ایران تجاوز نموده است یمن هفته جماعت الاول مطابق نوی آپریل، مجاهدین در شهر عبین بلا یک از پوسته های مرتدین حمله نموده تقریبا 16 پلیس و 6 دن ملشاه های محلی را به قتل رسانده اند. در همین روز مجاهدین توانستند که در شهر عدن یک پلیس را کشته و یک دیگر را زخمی سازند نایجیریا هفته جماعت الاول مطابق نوی آپریل. Guruji Hodi Darbuko Haram Basar Parasti Abobakrisikao Darruzia Aidina Soro Darjakias Kelisohoi Eishon Darnoi Jirio Amaliot Namudan Kidarna Tija Bissan Gustavatidot Ziodijarohati Bardoistan Darruzia Maskuria Amaliot Infidjori Digartavas Timutar Soikel Suradirav Kidarna Tija Ponsetan Gustav Shudan Landan HDG Madlagal Mutabek Hast April مجاهد مشهور زمان روز و امام مسجد در لندن شیخ ابا حمزل مصری بعد از 7 سال زندان از سوی حکومت بریتانیا به حکومت آمریکا تسلیم داده شد قبل از چند سال نیز حکومت آن کشور خواهان تسلیمی آن به آمریکا بود ولی کن وکلایان مدافع آن با این کار موافق نبودند اکنون به آمریکا تسلیم داده شد که تا در آنجا در زندان به طور ابدی باشد اش برادر دیگر باقی بماند والتف من <مترجم> الله شنوندگان عزیز رادیویی صدای جند الله این با داشته های برنامه امروزی ما که به خدمت شما تقدیم نمودیم تا دیگر که در صورت بقای حیات باسم به خدمت شما قرار میگیریم همه شما را به خداونی منان میسپاریم و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته وأطلب مسمعي في الشاش ابياتك ان لا تفرح فقد جئنا بجيش احمدي يكون للموت كما تهفون شرب الخمرتياتك ان لا تفرح فقد جئنا بجيش احمدي يكون للموت كما تهفون شرب الخمرتي اه لنيل شهاده في ساح أقصان الأبي اه لنيل شهاده في ساح اقصان الأبي واطلب مسمعي رصاص الرشاش ابي زمجد مسمعي يا رصاص الرشاش ابي زمجد واطلب مسمعي رصاص ابي زمجد رثاء